بسم الله الرحمن الرحیم و علفا سلم و فلمق سوره ان حزیلن انقلابها یا ان حسنون و علفا سلم و فلمق سوره ان حزیلن انقلابها یا ان حسنون حالا اگر کلمه ما دارای علف بود حالا علف داشته باشه ممکنه تسلیه باشه مثل زیدان رجولان غلامان ممکنه که مقصور باشه مثل مصطفی موسا اصا میگه می اگر علف بود در آخر کلمه و اضافه شد به سویه یا الف رو سالم نگه دار الف رو بذار سر جاش بمونه و علفن سلم بگو قلامای یعصای من طبع حدای این تو ترففز کن و بعد همچون ما قبلش ساکنه یار کن مفتوحش کن بگو من طبع حدای اسای. یا عسايا اتوکل علیه و الفن سلم واو واو حاتفه و این جمله سلم که فعل وستش رو عد کرده به جمله یک سر اول و این ما قبل واون زمه فکسر و یهن این یه یه اکسر دیگه هم داشتیم که چی؟ آخر ما اوزی فلیلیاه اکسری آه. این اکسری که اینجا دارید ببینید اکسر ازا این اکسر معطوفان علیه هست به این و علفن سلم نه اون اکسر جزای شرط چون عطف به جزا جزا محسوب میشه و غلط در میاد نزا گفتم به اکسر اول پیت و علفن سلم. باب، باب خالیه. اول به طور مطلق گفت الف رو سالم نگه دار حالا چه در تصنیه باشد چه در اسم مقصور نزد همه آقایون حرفا میگه وفل مقصور ان هزیلن انقلابها یا ان حسنان انقلابها مبتدا حسنان چیه خبرش انقلابها حسنان انقلاب اضافه شده به ها فائل خودش که یا باشد زمیریه که به یا برمیده و یا ان مفعولشه قلبه نزد نهات دو مفعولی استفاده میشه قلب و طلب و و یا ان قلب کردن و و یا. یا انقلابه میشه مطابعش میشه یه مفعولی انقلاب ها یا ان و یعن مفعولشه و منصول حسن هم که خبرشه انقلاب این یا علف ها میخوره به علف انقلاب این علف به یا حسنون زیباست در کجا؟ فل مقصور ندر تصنیه لا فل نزد نزده کی؟ نزد حوزی طایفه حوزی در کلمه مقصور مثل اصال موقعی که اضافه میشه میخونن چی؟ یا اصید من تباعه هودیه الف رو تبدیل به چی میکنن؟ یا میکنن و یا در یا بگید میشه الف علامت تاسنی. چی؟ الف علامت قاس رو نه الف تاسنی رو. فل مقزور و انحوزایلیم جفتش متعلق به حسنونه. جفتش متعلق به حسن خب بریم پایین ببینیم چی. و علفان سالم و علف رو سالم نگه دار نحو محیای ها که علفش مغلوب از یاست و عصای که علفش مغلوب از شیر وابه حی محیا مستر میمیشه یعنی حیاتی زندگی هم این نسلاتی و نسکی و محیای و مما تی اشاره به اونایی است اصایه هم اشاره به آیه دوم یه عصای ما که به یمینه که یا موسا یه یا اصایه قلامایه اون دوتا علف مقصور بود حالا مغلوب از واب یا مغلوب از یا این علف تصنیه است قلامایه میگه و سلامتو لعلف علتی فی, فی لغت الجمی سالم گذاشتن علف اونم علفی که در مصنا هست مثل غلامان در لغت همه یا آقایون عرب هاست همه و همه حتی حوزه جو علامت اعراب است یه قلبش بگید نمکن و لطیف المقصور اما اونی که در مقصوره مثل محیایه اصایه ان هزیل از قبیده هزیل از طریفه هزیل انقلابوها یا ان حسنون مغلوب شدنش به یا چیه؟ دگرگون شدنش به یا دگرگون شدن این علف به یا حسنون زیبا شما داشته نه مثال سبق و حویه قسمتی از همون شعریه که یعنی یک بیت دیگر از همون قصیده‌ایه که یک شعرش رو قبل خوندیم که اودا بنی و عقبونی حسرتن ان در وقاده و ابرتن لا توقلون ها حالا اینجا چی میگه سبغو هویه سبغو هویه وعنهم لهواهمو فتو خلمو ول کل جنبن مسرع این شعر هم مثل شعر قبلی مال ابو زویبه گزلی است لذا میشه بهش استعمال کرد برای اثبات علفی که قلب به یا شده نزد قبیله حسین سبق فعل و فائل هوایه بوده دیگه مفعولش بعد میگم هوایه گفته چی مفعول سبق و سبق. یعنی سبقت گرفتن این بچه ها خواهش مرا من دوست داشتم که قبل از این بچه هام بمیرم ولی اونها به خواهش من چه گردن؟ سبقت گرفتن اونها زودتر از من از دنیا رفتن سبق و حویه و اعنقو لحواهمو و اعنقو لحواهمو اعنقو فلوفایل لحواهمو متعلق است به اعنقون و در آغوش کشیدن و رسیدند به خواسته های خودشون یعنی خواسته خودشون که بود اونا زودتر از من مردن و اعنقون لحواه همون اتفاست به جای سبب فتخورلمون فتخورلمون یعنی ماتون پلکون پس حلاک شدن روزگار اونها رو بر زمین کبید فتخورلمون آت وس باز به جای سبب وا وا وا حالی و و و حالیه، ولی کل جنبل مصرع با وصاد و عین و حالا که برای هر پهلوی جایگاهی که به اون زمین میخورم، یه پهلوی، هر پهلوی یه زمینی داره که روش بذارند و دفنش کنن، به پهلوی خوانندگیش. ولی کل جنبل و برای هر جنبی پهلوی مصرع محلی است که به زمین بخورد مسرع یعنی جای زمین خوردن اسم مکانه یعنی محل و و سرعین و لکل جنبین مسرعون لکل جنبین خبر مقدم مسرعون مفتده محلخرین جمله حال است و حال اینکه برای هر انسانی هم مرگ هست و جایگاهی برای رسیدن پهلوش به زمین بچنده شاهد سر حویه بود که هوایه بوده خونده چی؟ هوایه خاتمتون خاتمتون در این خاتمه من اول بحث گفتم خدمت شما که میان بعضی در اینجا دو تا باب باز میکنن یکی مضاف باشد اسمهای غیر اسماع سته به سوی یا که احکامش اینایی بود که خوندیم یکی هم اسماع سته مضاف به سوی یا اصلا عب اضافه شد به یا اخ اضافه شد نزد مصنف ما چون اب هم مثل غلام بوده موقعی که اضافه می شده چی می شده؟ ما قبلش می شده؟ مکسور آخر ما اوزیف لیلیا اکسر حالا اسمای سته باشه یا غیر اسمای سته می شده؟ عبی. جا عبی رعی تو عبی مرد تو به؟ عبی لذا دیگه باب جداگانه باز نکرد آیم الله جلال در اینجا یک اشارتون مایی ای به این مبحث اختلافی هم میکنه گرچه نظر مصنف مشخص بوده یه اشارتون باری میکنه میگه چی؟ خاتمتون یعنی حاضهی خاتمتون یا حاخنا خاتمتون. در اینجا خاتمه است. المستمل فی اضافت عب و اخ و هم و هن اونی که استعمال میشه در اضافه شدن اب و اخ و هم و هن الالی یا اه. به سوی یا اینها اضافه بشن درست شد میگن چی؟ ابی اخی همی هنی کس مثل کلمه صحید مثل غلام درست شد؟ لذا مصنف ما هم تر به این مطلب بگید نکرد اما ببین و اجازه المبرد و, و اجازه داده است مبرد ابی جلد یعنی چی بوده ابون بوده اضافه شده به سوی یا واو و یا توی کلمه جمع شده شده ابوی کسره واو رو دادیم به ما قبل. بعد واو یا توی کلمه جمع شده سابقشون ساکن واو بده یا یا در یا ادغام شده چی؟ عبیه ایشون اینطور توصیف کرده و عجاز المبرد و عبیه برد لام به این که لام که واو بوده چکای کرده؟ برگردونده سر جای خودش موقعی که اضافه شده به سوی یا لام که بی دلیل حذف شده بوده هنگام اضافه شدن چیکارش کرده؟ بریه بود یوم گفتن حصفش اعتباطیه یعنی بدون قاعده مثل دم آب، ید لامورفیلشون افتاده و قاعدهی هم در جهت افتادنش الا تخفیف بدید نیست و عجازل مبرلد و عبیه برد لام خب یه بعد اینکه ذهنتون حد درقل آماده بشه یه تیکه هاشیه وار فارسی میگم دیگه عربیشو نمیگم بنویسید که بدونید چرا مبرد یه چیزی چیز رو اجازه دارید مبرد اجازه داده که لاملفل که واوه برگردد و بعد هم مقلوب به یا بشه و بعد هم یا در یا مضافنه چی بشه ادغام بشه یعنی عب وی بعد بشه عب و ویاب بعد ویاب قلب به یا یادت یادتان بشه چی؟ عبی یا. و در این خصوص تمسط کرده به یه شعر قدرون قدرون قدر باقاف قدرون احلک مجاز قدرون احل لکه ظلمجازه و عبیه قدرون احل لکه ظلمجازه و عبیه مال زل ظلمجازه بدار مال لکه ظلمجازه بدار این شعر رو یه شاید مثال نحوی توشه اون قدر الان مبتداست قدرن احل لکه زلمجاز جمله خبرشه مقتدا اینجا قدران مسوق نداره میگن صفت مقدر داره یعنی قدرون لایوالب قدری حتمی قضا و قدری حتمی اهلک لکه زلمجاز تو رو فرود آورده در این محله زلمجاز یعنی قضا و قدر خدا تو رو کشون آورده به این زلمجاز و عبی و به پدرم قسم و قسمه و به پدرم قسم این ما جواب قسمه مالک از ظلم مجاز و به پدرم قسم که ظلم مجاز برای تو جایگاه درستی بگید نیست ظلم مجاز به تو خوش نخواهد گذاشت میگه قدر قضا قدر تو رو که آورده به این ظلم مجاز کشته خواهی شد قضا قدری بزرگ حتمی و به پدرم قسم که تو در این ظلم مجاز خیر نخویدی این ظلم مجاز برای تو جایگاه بگیر نخواهد شد بعد آقای مبرد اخ رو هم حمله به اب کرده یعنی این شعر دلیل شده که بگه و عبی گه رو تو و عبی دیگه یعنی قسم به پدرم مثل اینکه بگه وربی قسم به پروردگارم و عبی ولی گفته و عبی گه این شعر دلیل شده برای اینکه رو اضافه کرده به سوی یا و مشدت کرده بعد هم اخ رو حمله کرده به عب چرا به خاطر اینکه اینها لفظن و معنن با هم نزدیکن به خاطر قریب بودن اینها لفظن و معنن عبو عب هم از نظر لفظی افتاده و بوده و اینها لفظن به هم هم یکی پدر یکی برادر جفتشون هم از اسماه سده در این خصوص به این حرف آقای مبرد جواب دادن یعنی به این شعر آقای یعنی اگر ما این شعر آقای مبرر رو توجیهش کنیم دیگه آقای مبرد دارای دلیل بگید نیست آیه جا صاحب کتاب کافی آیه ابن حاجب تو این قضیه یه جواب داده گفته این اصلش بوده و ابین ابین جمعع جمعه با یا و ملحقات به جمع با واو جمع سالم و عبین بوده بعد عبین اضافه شده به سوی یا نونش افتاده میشه چی؟ و عبی یه در حالت جری. نه قسم به پدرم بلکه قسم به پدرانم یعنی اجدادم شاعر به پدرانش قسم خورده نه به پدرش اینو جوابیه که آقای ابن عاجب داده که اولاً این چیزی که تو گفتی برخلاف قانونه یعنی قاعده و قانون اینه که اگر یه دونه حرف یعنی دو تا جواب بدی یکی گفته اولا این گفت اولی حرفی که تو زدی واو برگشته خلاف قیاسه چرا چون ما ید رو داریم اضافه میکنیم به سوی یا میشه چی یدی دم رو داریم اضافه میکنیم میشه چی دمی عب و هم مثل اونهاس این برخلاف قیاسه ثانیم برخلاف استعماله چون خود ملاجرا هم گفت اونی که مستعمل است عیس برخلاف استعماله بعد تازه اینی هم که تو میگی ما احتمالش رو میدیم که چی باشه عبین باشد و اضافه شده باشه به سوی یا و نون افتاده باشه شده باشه چی؟ و عبین مالک ظلم اجازه بدار بعد هم یک شعری رو مثال میزنه برای این قاعده میگه فلا ما تبینه اصواتونا فلا ما تبینه اصواتونا بکه اینه زمانی که صداهای ما بلند شد بکه اینه اون خانم ها گریه کردن و فده اینه بله عبینا و فده و فدا کردن بله عبینا کشوا کرده شده بله عبینا الابین جمعه جمع چی بسته شده بگی؟ بیاه. یا و پس این کلمه میتونه در اینجا هم عبین باشد و اضافه شده باشه به سوی یا خب پس بنابراین چی گفتیم به آقای مبرد؟ گفتیم این حرفت قابل قبول است و عجاز المبرد و عبیه برد لامتن از تو که به یه کرده بود دو تا جواب دادیم گفتیم اقرام برخلاف قیاسه و ثانی هم برخلاف استعماله و سالس هم اون دلیل تو هم احتمال درش میره ازا جاعل احتمال بطلال استعمال به خاطر این قواهیدشی که بهتون گفتن و فی فم در کلمه فم اجازه داده در کلمه فم بگیم چی چیز و فی فم فی این و فی فم فی یعنی المستعمل و فی اضافت اب و اخ و هم و هن الیاای آبی و اخی و همی و هنی و فی فم ات جای کجاست فی فی اضافه آب اجازه داده در اضافه شدن مستعمل است در اضافه شدن فم به سوی یا بگیم چی؟ فیه یعنی اونی که مستعمله فیه است یعنی میخوام میگم دهان من میگم چی؟ فیه و فی فم فیه و قل فمی و قلیلن استعمال شده چی؟ فمی یعنی میم رو نگه داشتن اضافه کردن به سوی یا مثل حوی و عمی. پس اونی که مستعمل است و فسی هست کدومه؟ فیه آه؟ و قلفمی و اجاز الفرار حالا در فیه و قلفمی هم یه نسبه آشیه بهتون بدیم که یکی دوتا قاعده سعفی نحوی توش باشه که یه چین بنویسید در کلمه فم فیه کسیر و قلیلا فمی گفته میشه هنگامی که اضافه کنیم فم رو به سوی یای متکلم در اون دو وجه جایزه پس موقعی که فم رو اضافه میکنیم به سوی یای متکلم چند بچه درش جایزه؟ دو وجه. یکی فیه یکی فمی یک فیه و این اکثر است و دوم فمی و این قلیه دو دومی معلومه آه. که فمی میگیم چیه معلومه چرا؟ زیرا اینکه یا متکلم رو ملحق کرده به کلمه فم برون اینکه تغییری در مفردش بده مثل ابو اخ کرده و چکایی کرده گفته فمی اما وچه اول که خیلی کسیر است در استعمال اعلال توش صورت گرفته میگه وچه اول که اکثر است و افسه در اون قلب شده واو به میم واو به میم قلب شده در حالت غیر اضافه یعنی اصل فهم هم که فم بوده این میم عوض از چیه؟ واوه و میم ما نداشتیم میگیم چطور؟ میگه و این به خاطر ضرورت هم قلب شده بوده واوه به میم به خاطر ضرورتی اجتناب ناپذیر ما مجبور شدیم واوه رو قلب به میم کنیم و اون ضرورت در حالت اضافه دیگه نیست اون ضرورت در حالت اضافه دیگه نیست لذا پس پنابراین دیگه واف قلب بمیم بگیر نمیشه یعنی کلمه فم که مفرده اضافه نشده فا واف بوده واف قلب بمیم شده به خاطر ضرورت الان میگم موقعی که اضافه میکنیم دیگه این ضرورت وجود نداره پس پنابراین قلب واف هم بمیم دیگه درست چون به خاطر ضرورت بود وقتی ضرورت از بین رفت دیگه قلبش حلط. بیانش بیان این مطلب اصل واو فاو بوده اصل واب چی بوده فاو هون فاو واو ها جمع فم میشه چی؟ افوا یا قلونه به افوا هم اصلش فاو واو ها بوده فاو هون بوده به سکونه واو. ها حذف شده از این کلمه به خاطر اینکه ها حرفیست خفی ها حرفیست خفی حذفش کردن مثل شفح که میشه شفحتون ها حذف شده حرفیست خفی حذف شده پس شده فعو کلمه ما شده چی؟ فعو و اگر قلب نکنیم واب رو بمیم اینجا ضرورته کش حالا که شد فهو اگر قلب نکنیم واب رو بمیم منقلب میشه به علف قلب میشه به چی؟ به علف چرا؟ به خاطر اینکه اولن این, این واب متحرک میشه در این هنگام چرا؟ چون دیگه حرف اراده دیگه چون دیگه واب شده مثل یال ید چطور میگیم گدن گدن گدن ها؟ و موقع اعلان و اعلان مصطفی روش جاری میشه. بعد بگیم فرد، فون ون، فا ون، فاون، فا فا فا فا اعراب درش جاری میشه، واو قلب میشه بعدلف. مثل هدن. که موقعش زیرا حرف اعراب است و ما قبلش هم مفتول پس واجب است اون موقع حضب کنیم علف رو اگر واقع قلب به علف بشه انگاه کنیم فا ون به علف بشه میگیم واقع بر فلد متعلق در طرف هم واقع شده ما قبلش هم مفتول قلب علف میشه فا بعد علف و نون تنوین مثل هوده یون التقای ساکنه میکنن بعد علف رو باید حضب کنیم نه رو دیگه چون تنویر چیه؟ علامت علف ما حضب نمیشه اون وقت تنویر میاد روی فا کلمه ما میشه یه حرفی کلمه یه حرفیه با تنویر ما بگیر نداریم این ضرورت باعث شده که واو رو تبدیل به میم کنیم تا کلمه ما یک حرفی نشه واجب از حذف کنیم علف رو چرا؟ به خاطر ادقای ساکنه بین علف و پس باقی میمونه اسم معرد ما بر یک حرف واحد و این علت این علت که واو باید بگیر قلب بشه به علف این علت در حالت اضافه نیست چرا چون در حالت اضافه کلمه فاو موقعی که هاش میفته میشه ها فاو موقعی که اضافه میشه به سوی یاء متکلم نزده ای مثل ابن خشاب و جرجانی و اینا خوندیم که مبنی اصلا قول سریعش اینه که مورب تقدیریه یادتون یا نیست خوندیم میشه فو یا ما قبلش واب رو کسره میده میشه فوی درست شد مورب تقدیری نزده ادهی و وقتی شد فوی درست شد فو اضافه کردیم به سوی یا دیگه یک حرف واحد نداریم دو تا حرفه اون موقع واقع قلب به یا میشه یا در یا ادغان. دیگه ما یک حرفی بگید نداریم چون دیگه موجبی برای حسبش که التغای ساکنین باشه وجود نداره زیرا موقعی که حسب میشه ها موقع اضافه کردن به سوی یا متکلم میشه فاو بعد اضافه میشه به سوی یا میشه فا و با و یا پس واجب میشه قلب کردن با و رو به یا و ادغام یا رو در یا و کسره هم میدیم به فا به خاطر چی؟ به خاطر مناسبت با یا چی گفتیم؟ خلاسی کلامش گفتیم کلمه فم اصلش چی بوده؟ فا و ها ها افتاده به خاطر خفت شده فا و با و تنوین هم چون مورده مثل یدن یدن بعد واو قبل به علف میشه الف به ادغاصا کنه با تنوین میوفته میشه یه حرفی. در حالی که اینکه یه حرفی با تنوین نشه ما وابش رو قل به میم میکنیم تا اینکه قل به الف بگید نشه میوفته. این حالت در هنگام اضافه بگی نیست. در هنگام اضافه واو اضافه میشه به سوی واب که فا و واب داریم و اضافه میشه به سوی یا فا و واب. و یا واو قل به یا میشه یا در یا ادغام میشه فیگه بعد فتحه را تبدیل به کسر میکنی میشه فاو بعد اضافه میشه فاویه بعد واقع به یا،, یا در یا ادغام فارم فتحه شد تبدیل به کسر چند تا نکته سرفی نحوی بود که ما توی مباحثمون لازمش داریم اینا رو نکاتش رو لازم داشتیم که عنوان کردم و در کلمه فم میگیم فیگه و قل فمی اجازر فررا حالا کلمه های فررا رو ببینید چی گفته در کلمه زو اجازه داده بگیم چی؟ زیه یعنی واو رو این هم اصلش بوده ز و ون یا زعوه یون لام الفلش که افتاده مثل ید و دم این هم گفته ما قلب کنیم به سوی یا مثلا کلمه فیه بگیم زیه میگه این نوع که مثل فیگه میشه اجازه داده آای فردا در کلمه زو بگیم زیگه میگه باید نهاد کفتن آقای حرف قلطه و صح هو انهالا تو زافه را مزمرن اصلا گفتن کلمه زو اصلا اضافه به سوی زمیر بگید نمیشه در لوقت که حالا ما بیاییم بحث بکنیم اگه اضافه به سوی یا شد آیا باش قلبه ده. یا میشه یا یعنی صالبه به انتفاع موضوعه تو کتاب ادایم خوندی که اهل المعروف مالم یبتذرفی هر وجو انما یعرف الظلف ازلمن الناس زغو گفت دو اضافه شده به ضمیر میگه این چیه شاز قابل قیاس نیست چیزی که قابل قیاسی نیست اصلا بحثش رو نمی‌کنن و سحاح و نحوی ها تصدی کردن ان حالات اضافه و, و مرن اصلا یک قسم باقی مونده از مضاف به سوی یا که اینم بگیم کلماتی مثل مثلا مرزی یون مرزی یعنی چی؟ پسندیده مرمی یون تیرانداخته شده کرسی یون سندلی. درست؟ این چیزایی که دارای دو تا یا هست آخرشون اگر اضافه بشن به سوی یا متکلم چجور بوده بشن؟ مثل جاری مجرای صحیح هم آه؟ مثل جاری مجرای چی صحیح یعنی مثلا فرض کن کرسی اگر اضافه بشه به سوی یاء متکلم میگیم چی کرسی گی مثلا سه تا یا میشه مشخص دو تا یا داشت یه دونم یاء متکلم بیاد میشه سه تا بعد برای تخفیف جایز است که چیکار کنم ها یکی از یا ها رو که یاء متکلم هست کارش کنم حذفش کنم شما نگاه کنید در سوره یوسف میگه یا بنی گ یا بنی گ چون گفتیم منادی اضافه میشه منصوب دیگه منادای اضافه درسته و اونی که اضافه میشه به سوی یا متکلم جایز از چیکارش کنیم جایز است کسره بگذاریم آخرش جایز است بگیم فتحه بگذاریم که دلالت علف کنه اینجا هم یا بنی یک خوندن یا بنایه میتونستن به ستا یا هم بخونم خوندن هم حتی <تصفيق> یا بنایی اصلش چی بوده؟ بنایه بنایه یا و در یک کلمه جمع شده واق قلب به یا شده یا در یا اقام شده بنایه بعد اضافه شده به سوی یا شده بنایی پسر کوچک من بعد یا آخر افتاده کسر دلالت میکنه یا فتح دلالت یاونه یا یاونه لا تفسوس رویا آن رویای خودت را رو نکند پس بنابراین اگر آخرش دو تا یا هم داشته باشه مانند کلمات صحیح بلکه مثل جاری مجرای صحیحه بریم سر بحث اضافه تمام شد بحث اعمال مسند باب و اعمال مستره باب اعمال مستر که تو که عوامل جز عوامل قیاسی حسابش میکن میگه به فعل هل مستره الهقفل عمل مزافنه و مجردن او هن میگه مستر سه جوره گاهی اوقات اضافه شده گاهی اوقات از اضافه و الفلامه گاهی اوقات با الفلامه میگه در حرس صورتش مستر این فعله خودش چیکار کار میکنه الهق فعل و در المستره مفعولشه به فعلهی با میخوره به مستر زمیر برمیگرده به مرجع متاخره در لفظ اما متقدمه در رتبه رتبه مفعولون به بالاتر از رتبه جارو ملحق کن مستر رو به فعل خودش در چه چیز ملحق کنم مستر رو به فعل خودش فعل عمل در عمل کردن متعلق از به خود همونطور که به فعلی متعلق است کن یعنی اگر مستر اگر فعل لازمه اون هم مثل فعل لازم چکار میکنه؟ یه دونه فاعل برمیداره عجب تو من قیام زیدن اگر یک مفعولیه اونم یه مفعول برمیداره عجب تو من زربه که زیدن دو مفعولیه دو تا مفعول برمیداره عجب تو من علم که زیدن آلمان سه مفعولیه سه مفعول برمیداره عجب و منی اعلام کرد زیدن امرن قائمات اینه عمل فعل خودشون در لزوم و تعدیه به یک و دو و به فعل حلمستره الفقه فلحمن مضافن حال است هست حالا اون مستر در حالی که اضافه شده یا مجرد از اضافه است عطفه به جای مضافنه او محل اینم عطفه اینا همه حال معال متعلق به یه مصاحبنه یعنی مجافن او مجردن او مصاحبن معال سه تا حالا بود در حال اضافه باشه یا مجرد. از اضافه و حال فلان باشه یا و حال افلام البته ببینید موقعی که اضافه باشه چیه؟ عملش خیلی خیلی زیاده مستر اضافه بشه اون موقعی که مجرده نه اضافه شده نه الفلام داره مثل اتامون فی یوم در این صورتی کمتر از اولیس. اولی اکثر دومی چی؟ کسیر سومی که با الفلام بیاد به سبب متعلق را انجر. لا تعخذ کن به انجر جهان. لا تعزکم به همان و رحمتون به ما متعلق راحت. فلن ما بلق ماهو از سعیو ماهو متعلق و از اما مفعولون به رو نصف بده با هل هم باشد این لغت پایین در قرآن نایمده لغت فصیح نایمده قلیل نایمده اومان این کان او ما اومان یهلو محلهون این این شرطیه است کانه فعل فعلان اسمش این کانه فعل شرط اینه و جزای شرطش کل بیت بالاست که دلیل اون جزاست به قرینه اون دلیل اون جزاش حصب شده این کانه فعلان معن او ما این معن ظرف است دیگه ظرف بعد از نکره میشه چی؟ سفر؟ اگر فعلی که این سفت رو داره با ان یا با ماست ما انومای مستریه فعلی با انومای مستریه یهولو محلهو یهولو فعل زمیر فاعلش که به فعل میخوره که اسم کانه است محلهو ظرف است مفعول امفی هست برای یهولو مثل رب عدخل نیم متخلا صدق و اخرج مخرج محلهو این جمله یه هل و محلهو خبر کانه است کل کانه فعل شد جزای شد میگه کی میتونه مستر عمل کنه میگه به شرط دیم که مستر رو بتونیم ورداریم جاش چی بذاریم بگیر ان و فعل یا بتونیم ورداریم و جاش بگیر ما و فعل بذاریم مای مستری حالا میگیم چرا انجل و ما با این قید مسادری که دیگه حالت جمود پیدا کردن خارج شد آخو مستر دو جا عمل میکنه نگاه کنید دو جا عمل میکنه یکی مثلا مثل مورد زربن زیدن زربن زیدن این زربن جای چی نشسته؟ جای ازرب آه ازرب افتاده مثل فندلن زرعی غل مالا. تو سیوتی یک خوندید فندلن زرعی غل ماله ندل سهالی بی تو همین سیوتی دو باب اضافه خوندید اونجا خوندید اونجا. این ندلن زورای قول ماله این علماله مفغوله کی بود؟ ندلن که جای چی نشسته بود؟ جای اون دون ها؟ این دیگه اینجا ندلن در تحویل انو فعل بگیر نیست جانشین خود فعله این یه جاست که مستر عمل میکنه اینم یه جای دیگرشه که مثلا عجبنی ضرب و که زیدن عجبنی زرب و که زیدن و برداریم جاش میتونیم چی بذاریم؟ و او بعد میگه ولی اسم مسترین عملون یکیم اسم مستر داریم که عوامل مله محسن این اسم مستر رو به شکل قشنگی بیان کرده ولی اسم مسترین واو واو استینافیه لی اسم مسترین خبر مقدم عملون مبتدا چی چی؟ محفر. برای اسم مستر هم بگید عملیست یعنی اسم مستر هم عمل خواهد نگاه کنید اون بالا گفتش که به فعلهی المستره الحق فعل عمل گفت مستر رو ملحق کن به فعل خودش فعل عمل با الفلام گفت در هر گونه عملی در همه عملها فعل ماننده بگید مستر مانند فعل خودش. ولی به اسم مستر که رسید گفت ولی اسم مستره این عملون. نکرا برد که دلارتی برای غلط میکنه یعنی برای اسم مستر هم نوعی از عمله حالا آره اون نوع رو ملاجلا دوزیم میده یعنی اسم مستر مطلقا مثل مستر عمل بگیر نمیکنه. لِاسم اسم این عملون بیاییت بایی وفیه اعمال و اسمی گفت باب و اعمال مستره میگه باب باب اعمال مستره فیه و در همین باب اعمال اسم مستر هم مورد بحث واقع خواهد شد به فعلهی المستره الهق فعل عمله به فعل خودش مستر رو مرحب بکن در همه گونه عملی سوا اون کان مزافن و به اکثر میخواد که اون مستر مضاف باشه و قوه اکثر و این هم خیلی زیاده اکثر رو استعمالا خیلی بیشتر است از جهت چی؟ استعمال لعنه ها متفقون علیه چون متفقون علیه یعنی عملش به شکل مضاف رو همه چیه قبل دارم متفقون علیه و استعمالش هم کسیر روزا شده اکثر اکثر و استعمالا لعنه ها متفقون علیه او مجردن یا مجرد از اضافه و لام خب وقتی مجرد باشه چون اسمه چی میگیره؟ تنویم میگیره و منبونن و هوه اقییسو و این از همش قیاسی تره دار تره چون اگه اضافه شده باشه یه مقدار اضافه محارزه داره با چی؟ چون اضافه از خصوصیات اسمیس حالا درسته اکثره از استعمال کار نداریم اضافه و علف نام هر دو خصوصیت چی دارن؟ خصوصیت اسمی رو ایجاد میکنن. کنن در که این از شبه فعلا هست به خاطر شبهات به فر و جانشینی انافر به جای اوست که عمل میکنه. لذا و خوبه اقیه سو شد و اکثر استعمالا منتالی قیاسی تر از هر دو تاست و کثیرتر از در استعمال از ما بعدش یعنی میشه کثیر. چرا چون شبیهتر از به فعل؟ چون علامتی که دلالت بر اسمیت بکند را بگید؟ این جنبه اسمیت او معان یا با الف لام باشه، و هو در رو و این نادرتر از دو قسم قبلی است. یعنی قسم قلیل درسته؟ مشخص؟ چرا چون شباهتش به فعل به خاطر وجود الف لام چی شده؟ کم شده. سمه یعنی چی؟ فصل کتاب میگه فهمیدیم که به سه شکل عمل میکنه مثل فعل خودش میگه سمه انهولای عمل و مطلقا میگه فکر نکنی که مستر مطلقا مثل فعل خودش عمل میکنی شرطی نداره نه شرط داره سمه انهولای عمل و مطلقا. بل بلکه امکان غیر مزمره بلکه به شرط اینکه چی؟ زمیری نباشه که به مستر برگرده زمیری باشه به مستر برگرده خیر، حالا مثال خواهد زن غیرمزمره به شرط اینکه که زمیر بگید نباشه زمیر مستر نباشه زمیر مستر مثل خود مستر عمل نمیکن ولی محدوده و به شرط این بگید محدود نباشه یعنی دلالت و یک و دو و سه و اینها بگید نکنه مثلا کلمه ضربت دیگه عمل نمی کنه چرا چون با تای وحدت یک و و از خصوصیات چیه اسم ولا محدودن. ولا مجموعه جمع هم نباید باشه محدود نباشه این و یکی نکنه دوتا نکنه مجموعه نباشه جمع نباشه تصنیه هم میتونست بگه مگفت ولا محدودن. ولا تصنیه ولا مجموعه چون جمع رو گفته واحد رو هم گفته تصنیه هم وسطش چیه ست درسته ولا مجموعه پس مستر با این ستا عمل نمیکنه. و کانا فعلن مئن و معما مخاطب بگه ما, ما, ما به جای ان المستریه فعلی با وجود ان و با وجود ما المستریته این المستریه صفت انست و ما چون با اوعت کرده صفت رو مفرد آباده المستریته یهلو محله. به به جایو بالای این چرا گفته ان چرا گفته ما خب یکی می میگفتیگه بالاش بنویسید فیقدر درو به ان فیقدر درو به ان ازاوری دل موزی یا اول استقبال اگر اراده ماضی شده باشه از اون مستر زمانش که بازش تصور کردن ماضی باشه یا استقبال باشه ان تقدیم میگید مثل این مثال عجب تو منظر به کزیدن عجب تو منظر به کزیدن امس او قدن امس او قدن و یقدر و به ما و ما تقدیر میشه ازا اورید به هل حالو اگر زمان چیه اراده شده باشه؟ خواه ازا اورید به حل حال نحوا و عجب تو منظر بکه از زیدن الا پس ها پس اینکه گفته ان یا ما بیاد چون بعضی جاها باید ان تغییر گرفت بعضی جاها باید ما تغییر گرفت اون جایی که باید ان تغییر گرفت جایی که اراده ماضی یا استقال ازش شده باشه اون جایی که باید ان تغییر گرفت ماضی یا استقبال اون جایی که ما باشه زمان نحو مثال میزنه نگاه کنید لولا دفع الله اناسه لولا لولای قالبی هست لولا دفع الله اناسه موجودون مفتداست دفع دفع مستر اضافه شده به الله فائلش الناس چیه؟ مفقود درسته؟ الان میتونیم بگیم لولا ان دفع الله اناسه مثل لولا ان هدان که مسترشی چی اومده با ان اومده مستر معول اومده او اتامون این مثال کدومش بود مثال مزاف که قسم اکثر بود او اتامون فی یومن زی مسقبتن یتیما اتامل اینجا مستره یتیما چیه مفعولشه عمل کردی کسی هم هست فائلش هم ذکر بگید شده چون قصدی روش نبوده اصلا زکر نشد فی یومن متعلق است به اتام زیم از یعنی زیجوهن روزی که روز گرسنگی است میگه تعام دادن در یک روزی که صاحب گرسنگی است و گرسنگی آور است یتیمی را این یتیمن نفعول اتامونه زیم از قبطن صفت یوم یعنی زیجوهن این هم مورد منوند که قسم عقیس بود و اکثر از این مابعدی زعیف و نکایت اعدائهو هم تو عوامل فرنه این مثال هم توی کتاب سمدیگه زعیف و نکایت اعدائهو یخال الفراره یراخی الاجله زعیف و نکایت یعنی قوه زعیف نکایته خبر مبتدایه محضوفه نکایه یعنی آل انتقام یعنی ضعیف ال انتقام خب ضعیف انتقامه او ضعیف است در انتقام گرفتن اعدا انتقام گرفتن از دشمنانش این اعدا او مفعول نکای است ها و مصدر معرف به الف لام چیکار کرده ها. عمل کرده و اعدا او رو بگید منسوب کرده به نکای یخال <مدلس> الفرار خالو از افعال قلوب خاله یخالو زمیر فائلشه الفراره مفعول <مدلس> اولشه که مختلا <مدلس> بوده یراخی و فعلو و مفعول <مدلس> فائلش مستطره برمیگرده و الفرار این جمله یراخی علاجله کلش محل منصوب مفعول ثانیه یخالو گمان میبرد گزنو گمان میبرد فرار کردن از میدون جنگ شول خواهد کرد به تحقیق خواهد انداخ عجل او را مرگش را چکار میکنه دیر میکنه میگه اینطور نیست ببینید برای مضافش مثال از کجا زد قرآن برای منوننش هم مثال است قران زد اما برای مؤلف و الفلامش که نث شده باشه مثال از قران نزد من چند تا آیه خوندم براتون که اونها چی بود همش در جار مجرورو کرد. گفتم ما در قرآن ندیدیم که معرف باشد و نصد داده باشه به عنوان مفعول به خلاف مزمره بر خلاف جایی که زمیر باشه مثال نهو زربو که المسیعه علا اینجا هیچ اشکال نداره زرب اضافه شده به کاف اسم فائلش المسیعه مفعولش زرب مبتدا حسنون خبر زربو که المسیعه حسنان زدن تو انسان گناهکار رو چیه؟ حسنان خوبه اگه آدم بدکار رو بزنی خوبه و هوه هوه میخوره به کی؟ زربو کرد زمیر مستره المحسنه میخواد مفعول بشه برای هوه مثل موسی. که مفعول زربه میگه این غلطه و هوه المحسنه قبیه میگه اینجا این مثال این تیکه دومش عربی بگید نیست غلط هست برای این که عربی بشه اینجا باید چی بگه؟ باید بگه نظر بوکل کلمه چی چی؟ قبیم وزدن تو آدم نیکوکار رو چیه؟ قبیم و الا اگر زمیر بیاره غلطه ول محدوده و به خلاف اون جایی که مستر چی باشه؟ محدود باشه نه و عجب تو من ضربتی که بگید؟ زیدن الان ضربت چیه؟ کوتای دیگه محدوده دیگه ها من که زیدن کاف فايلش زیدن مفقولش میگه من تعجب کردم از یه دونه زدن تو زید رو میگه نمیتونه اینطور بگه من ای که زیدن پس اگه خواست بگه از یه دونه زدن چی بگه میگه میگه اینطور بگه عجب تو من زرب که زیدن زربتن مواجه اینطور بگه عجب تو من زرب که زیدن زربتن تعجب کردم از زدن تو زد رو زدنی یه دونه ای. یه دونه زدن اما مستر اگر محدود باشه عمل نبکنه شهزده جواب سوال مقدره پس این شعر چی؟ میگه این شعر شازده. از قابل قیاس بگید نیست ما قیاسیات رو داریم بحث کنیم که ما نسان